مصنوی معنوی مولوی برنامه نوود چهارم حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنکه بر بود دستارش و بانگ می زد که باز کن ببین که چه میبری آنگه ببر. یک فقیه جنده ها در چیده بود در امامه خیش در پیچیده بود تا شود زفت و نماید آن عظیم چون در سوی محفل در حتیم ژنده ها از جامه ها پیراسته ظاهرا دستار از آن آراسته ظاهر دستار چون حله بهشت چون منافق اندرون رسوا و زشت پاره دلق و پنبه و پوستین در درون آن امامه بود دفین روی سوی مدرسه کرده سبوح تا بدین ناموس یابد او فتوح در ره تاریک مرد جامکن منتظر ایستاده بود از بهر فن در بود او از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را. پس فقیهش بانگ برزد کی پسر باز کن دستار را آنگه ببر. این چونین که چهار پر را می پری باز کن آن هدیه را که می بری. باز کن آن را به دست خود به مال آنگهان خواهی ببر. کردم حلال. چون که بازش کرد آنکه که می گریخت صد هزاران جنده اندر ره بریخت زن امامی زفت نابایست او ماند یک از کهنه در دست او بر زمین زد خرقه را بی یار زیندقل ما را براوردی زکار نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بیوفایی خود را نمودن به وفات معدارندگان از او گفت بنمودم مودم دغل لیکن ترا از نصیحت باز گفتم ماجرا همچنین دنیا اگرچه خوش شکفت بانگ زد هم بیوفایی خیش گفت این كون و فساد ای استاد اندغل کون و نصیحت آن فساد کاون میگوید بیا من خوشپیم آن فسادش گفته رو من لاشیم ای ز خوبیه بهاران لبگزان بنگران سردی و زردی خزان روز دیدی طلعت خورشید خوب مرگ او را یاد کن وقت غروب بعد را دیدی بر این خوش چار تاق حسرتش را هم ببین اندر مهاق، کودکی از حسن شد مولای خلق بعد فردا شد خرف رسوای خلق گر تن سیمین تنان کردت شکار بعد پیری بین تن چون پنبزار ای بدیده لوت های چرب خیز فضله آن را ببین در آبریز مرخبس را گو که آن خوبیت کو بر طبق آن زوق آن نغزی و بو دو آن دانه نبد من دام آن چون شدی تو سعید شد دانه نهان بس انامل رشک استادان شده در صناعت عاقبت لرزان شده نرگس چشم خمار همچو جان آخر مش بین و آب از وی چکان حیدر کندر در صف شیران رود آخر و مغلوب موشی می شود طبع تیز دوربین محترف چون خر پیرش ببین آخر خرف زلف جاده ماشکبار عقل بر آخرا چون دم زشت خنگ خر خوش ببین کونش ز اول با گشاد و آخر رسواییش بین و فساد زن که او بنمود پیدا دام را پیش تو برکند سبلت خام را پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ورنه عقل من زدامش میگریخت توق زرین و همایل بین حله غل و زنجیری شدست و سلسله همچنین هر جزء عالم میشمر اول و آخر درارش در نظر هر که آخر بینتر او مسعود تر. هر که آخر بینتر او مطرود تر. روی هر یک چون مه فاخر ببین. چون که اول دیده شد آخر ببین. تا نباشی همچو ابلیس و وره نیم بیند. نیم نه نی چون ابتری دید تین آدم و دینش ندید این جهان دید آن جهان بینش ندید فضل مردان بر زنان ای و شجاع نیست بهر قوت و کسب و زیاد ورنه شیر و پیل را بر آدمی، فضل بودی، بهر قوت ای امی. فضل مردان بر زن ای حالی پرست، زان بود که مرد پایان بین تر است. مرد کندر عاقبت دینی خم است، او ز اهل عاقبت چون زن کم است. از جهان دو بانگ می آید بزد تا کدامین را تو باشی مستعد آن یکی بانگش نشور ادقیا و آن یکی بانگش فریب اشقیا من شکوفی خارم ای خوشگرم دار گل بریزد من بمانم شاخ خار بانگ اشکوفش که اینک گلفروش بانگ خار او که سوی ما مکوش این پذیرفتی بماندی زندگر که محب از زد محبوب است کر آن یکی بانگ این که اینک حاضرم بانگ دیگر بنگرن در آخرم حاضریم هست چون مکر و کمین نقش آخر زاینه اول ببین چون یکی زیند و جوالندر شدی آن دگر را زد و نادرخور شدی ای خونک آن کوز اول آن شنید کش اقول و مسمع مردان شنید خانه خالی یافت و جا را او گرفت غیر آنش کج نماید یا شگفت کوزه نو کو به خود بول کشید آن خبست را آب نتواند برید در جهان هر چیز چیزی میکشد. کشد. کافر کافر را و مرشد را رشد. کهربا هم هست و مقناطیس هست. تا تو آهن یا کهی آید بشه برد بارد مقناطیست. ار تو آهنی ور کهی بر کهربا برمیتنی آن یکی چون نیست با اخیار یار لا شد پهلوی فجار جار هست موسا پیش قبطی بس زمیم هست هامان پیش سبتی بس رجیم جان حامان کازب قبتی شده جان موسا طالب ثبتی شده میده خر که کشد در اجتزاب میده آدم جذوب گندم آب گر تو نشناسی کسی را از زلام بنگر او را کوش سازی دست ما بیان آنکه عارف را قضا است از نور حق از که هر کره پی مادر رود، تا بدان جنسیتش پیدا شود. آدمی را شیر از سینه رسد، شیر خر از نیم زیری رسد. عدل قسام است و قسمت کرده نیست. این عجب که جبر نیو و ظلم نیست. جبر بودی که پشیمانی بودی، ظلم بودی که نگهبانی بودی، روز آخر شد سبق فردا بود، راز ما را روز کی گنجا بود، عیبه کرده ایتماد واسقه، بردم و بر پلوس فاسقه، خوبه برساختستی از حباب، آخران خیمه است واهی تناب. زرق چون برق است و اندر نور آن، راه نتوانند دیدن رهروان. این جهان و اهل او بی حاصلند، هر دو اندر بی وفایی یک دلند، زاده دنیا چو دنیا بی وفااست گرچه رو آرد به تو آن رو قفاست اهل آن عالم چو آن عالم زبر تا ابد در عهد و پیمان مستمر خود و پیغمبر به هم کی شدند معجزات از همدگر کی بستودند کی شود پژمرده میوی آن جهان شادی عقلی نگردد اندهان نفس به اهده است زن رو کشتنی است او دنی و قبلگاه او دنی است نفس ها را لای است این انجمن مرده را در خور بود گور و کفن. نفس اگرچه زیرک است و خورددان، قبله اش او را مرددان. آب وحی حق بدین مرده رسید، شد خاک مرده زنده پدید. تا نیاید وحی تو غره مباش، تو بدان گلگونه تالا بقاش بانگو جو که آن خامل نشد، تاب خرشیده که آن آفل نشد آن هنرهای دقیق و قال و قیل قوم فرعوناند اجل چون آب نیل رونق و تاق و ترونب و سهرشان، گرچ خلقان را کشد گردن کشان. سهرهای ساهران دان جمله را، مرگ چوبی که آن گشت اژدها جادویی ها را همه یک لقمه کرد. یک جهان پر شب بود آن را ساب خرد. نور از آن خوردن نشد افزون و بیش بل همان سان است کو بوده است پیش در اثر افزون شد و در ذات نی ذات را افزونی و آفات نی حق زیجاد جهان افزون نشد آنچه اول آن نبود اکنون نشد لیک افزونگشت اثر زیجاد خلق در میان این دو افزونی است فرق هست افزونی اثر اظهار او تا پدید آید صفات و کار او هست افزونی هر ذات دلیل که حادث با علتها علیل. تفسیر <تصفح> او فی نفسه خیفتان موسا قلنا لا تخف <تصفح> انك انتا الاعلا گفت موسی سهر هم حیران است چون کنم که این خلق را تمییز نیست. گفت حق تمییز را پیدا کنم، عقل تمیز را بینا کنم. گرچه چون دریا برآوردند کف، موسی تو غالب آیی لا تخف، بود اندر عهد خود سهر افتخار چون عصا شد مار آنها گشت آر. هر کسی را دعوی حسن و نمک سنگ مرگ آمد نمک ها را مهک سهر رفت و معجزه موسا گذشت هر دو را از بام بود افتاد تشت، بانگ تشت سر جز لعنت چه ماند، بانگ تشت دین بجز رفعت چه ماند؟ چون محک پنهان شد است از مرد و زن، در صفا ای قلب و اکنون لاف زن، وقت لاف استت، محک چون غایب است، می برندت، از عزیزی دست دست. قلب می گوید ز نخوت هر دمم، ای زر خالص من از تو کیکمم. زر همه گوید بله ای خاجتاش، لیک می آید مهک آماده باش. مرگتن هدیه است بر اصحاب راز، ذره خالص را چه نقصان است، گاز. قلب اگر در خیش آخر بین بودی، آن سیه کاخر شد و او اول شدی. چون شدی اول سیاه، اندر لقا، دور بودی از نفاق و از شقا، کیمیای فضل را طالب بودی، عقل او بر زرق او غالب بودی. چون شکسته دل شدی از حال خیش جابر اشکستگان دیدی به پیش عاقبت را دید و او اشکسته شد از شکسته بند در دم بسته شد از شکسته بند در دم بسته شد فضل مسحا را سوی اکسیر راند، آن زرندود از کرم محروم ماند. ای زرندود، مکن دعوی ببین که نماند مشتری دعما چنین نور محشر چشمشان بینا کند، چشم بندی تو را رسوا کند، بنگرانها را که آخر دیدند حسرت جانها و رشک دیدند بنگرانها را که حالی دیدند سر فاسد زسل سر ببریدند پیش حالی بین که در است و شک صبح صادق صبح کاذب هر دو یک صبح کازب صد هزاران کاروان، داد برباد حلاکت، ای جوان، نیست نقدی کش غلط انداز نیست، وای آنجان کش محک و گاز نیست. زجر مدعی از دعوی و امر کردن او را به مطابقت. بو مسلم گفت خود من احمدم دین احمد را به فن برهم زدم مسیلم را بگو کم کن بتر غره اول مشو آخر نگر این قلاووزی مکن از حرس جم پس کن تا رود در پیش شام. شام مقصد را نماید همچو ما که این طرف دانه است یا خود دامگاه گربه خواهی ور نخواهی با چراغ دیده گردد نقش باز و نقش زاغ ورنه این زاغان دغل افروختند بانگ بازان سپید آموختند بانگ هدهد گربی آموزد فتا راز هدهد کووا قیقام سبا بانگ بر رسته ز بر بدان تاج شاهان را ز تاج هدهدان حرف درویشان نکته آرفان بستند این به هیایان بر زبان هر حلاک امت پیشین که بود زن که چندل را گمان بردند اود بودشان تمییز کان مظهر کند لیک هرس و آز کور و کر کند کوری کوران ز رحمت دور نیست کوری هرساست است کان معذور نیست چارمیخ شه ز رحمت دور نه چارمیخ حاسدی مخفور نه ماهیا آخر نگر بنگر بشست بدگلویی چشم آخر بینت بست با دو دیده اول و آخر ببین هین ما باش اعور چو ابلیس لعین آن باشد که حال دید و بس، چون به هایم خبر از باز پس. چون دو چشم گاو در جرم تلف، همچون یک چشم است کش نبود شرف. نصف قیمت ارزدان دو چشم او، که دو چشمش راست مصند چشم تو، ورکنی یک چشم آدم زاده ای، نصف قیمت لایق است از جاده ای. زان که چشم آدمی تنها به خد و چشم یار کار می کند چشم خر چون اولش بی آخر است گرد و چشمش هست حکمش اعور است این سخن پایان ندارد بان خفیف می رقع در تم رقیف.